احل بیت تیبین تاهرین سیما بقیت الله فلعرزین و لعنت و عدا الله العجمعین من الان الى قیام یوم الدین هدیب پیشکار امام زمان علیه السلامی صلوات نهت کنید اللهم صل علی محمد و آمه محمد, محمد عجل فرجان فرج. ایام بلادت امام رضا علیه السلام شمس و شموز، انیس و نفوس، امام رعوف حضرت علی ابن موسی رزا رو به شما عزیزان و خودم تبریک میگم، انشالله که جزء پیروان واقعی امام رضا علیه السلام باشیم. قبر اون حضرت رو در این عالم با معرفت زیارت کنیم و شفاعت اون حضرت در آخرت نصیب حال ما بشه. سلام و رو بلندتر خدمت میکنیم. خب این دوستمون اسمش شما چی بود؟ علی سید علیان علی خب یه سوال کرد گفت چرا آخر نماز سلام میدیم معمولاً آخر ها میگیم چی؟ خدافز سلامو اول میدیم خب اولا که این سلامی که آخر نماز میدیم فلسفه های زیاده داره چون کل نماز فلسفه زیاده اما این نکته حالا من به شما بگم تو عرب وقتی کسی میخواد از کسی جدا بشه ازش چیکار میکنه میگه سلام علیکم و رحمت الله به خاطر همینه که آخر سخنرانی ها بزرگان ما میگن چی؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو این السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو چما یاد کجا میندازه سلام آخر نماز دیگه چون اونجا ستا نماز تا سلام داره سلام اول دومش که مستحبه ببرید محکده سلام بر. پیغمبر و سلام بر عباد صالح و سلام آخرش سلام واجبه خب این نکته جواب سوال شما باشه یه نکته هم حالا ارص کنم تکمیل جواب سوال اگر ذهنم جواب بده اون جمله معروف امام حسین علیه السلام که میفرماید حالا من زیاد ذهن خوبی ندارم این کون ذهن ذهنا هستم خب جواب نمیده شما بخوام بگم شاید بعضی از شما حتی حفظ باشید ولی من حفظ نباشم خب اگر علی آقا حفظه به ما کمک کنه اون جمله معروف امام مسلم علیه السلام که وقتی یزید رو به خلافت می و این خبر به امام حسین علیه السلام می میفرماید می فرماید که اگر کسی مثل یزید به حفظ هفصنش... نیستی در بگید نه می نکنم جمله هم که حضرت می که اگه کسی مثل یزید به خلافت امت اسلامی برسه باید فاتحه اسلام و خون و الاسلام و السلام این تعبیرشه حضرت خب حالا من جواب ندارد که اون که لفت به شما بگم ولی اونجا هم حضرت میگه چی؟ و اسلامو و السلام یعنی فاتحه اسلام تمام خب اسلام باید تمام بشه و السلام با سلام دیگه چرا باید آخرش میاد میگه. این دوتا جواب سوو هم به شما بگم من از استاد خودم پرسیدم که وقتی میرییم اگه و بعادت مامرضاست هم اونم رفتیم زیارت کردیم. کسی که نیست نرفته باشه با و سوقای ماضا ایشالله همین زود زود به زودی زود شما زیارت کنید ولی یه رسمیه هرکس اولین بار با کسی میره کسی میبرندش اولین بار میگن زیارت کنه یه صفحای خاصی داره. اون کسی هم که اون میبره بیشتر صفا داره ها من همین امسال اولین بار یک عزیزی که سال شما بود بردم اونجا بعد بهش میگفتم که علی قا گفتم نما بده یه رسمیه حالا هر کس شما راه اولین بار بود بعد یک نما بده نه که پولی بهش بدی یه دعای خوبی در حقش کنی اون بنده خدا فکر می‌کرد من میگم یه پولی بده گنبدنما گفتم آ یه دعا حت‌داقا برام می‌کنی که گفت باش خب شما از جهت که هر کسی اولین بار بخواد بره اونجا داشتم چی میگفتم خب از استادم سوال کردم که وقتی از حرم آقای ماموزا میخوام بیام بیرون وقتی دم در میرسیم دست میزیریم سینمون رو به گمبت میگیم چی از سلام علیک یا علی موسی سرزا خب گفتم وقتی میخوام بیام بیرون بر میگردیم باز رو به حرم چی بعد بگیم بگیم مثلا خدا حافظ آقا خب. و نه گفتش که ایشون جواب داد گفتش که بازم میگی السلام علیکم یا السلام علیک یا علی ابن مسر رزا بازم در موقع خروج وقتی برمیگردی رو به چیز حالا مستبد در هر دری که میرسی چون درهای مختلف داره تا از خارج بشی هر جا که رسیدی برگردی باز رو به آقا یه سلام دیگه بدی این اون سلامه از کدوم سلام از, از اون بفرستی <تصحیح> <تصحیح> اللهم صل على محمد امام رضا علیه السلام در سال 148 و هشت هجری 11 ذی القعده متولد شدند در شهر مدینه خب یعنی سوال همه امامای ما اکثرا تو شهر مدینه متولد شدند یعنی شهر پیغمبر از این جهت ولی خیلیشون مثل امام حسین علیه السلام مثل عیمه دیگری که در کشور عراق مطفون هستن یا خود حضرت رضا علیه السلام که ولی نعمت ما هست در مشهد رضا مطفونه ولی محل شهادتشون این نشوندهنده این هستش که عیمه ما در اوج قدرت امامت خودشون ولی در تلاتوم بودن یعنی خیلی به این ور اون ور فرستاده می شدن در واقع اگر عیمه ما رو کاری کارشون نشن شهرشون کجا بود؟ مدینه بود اهل مدینه هستن خب پدر بزرگوارشون هم امام موسی کازم علیه السلام هست و مادرشون به نام تاهر نامیده شده البته گفتن نامای مختلفی داره مثلا توکتم با دو نقطه است. یا مثلا نجمه خب اسمای زیادی بود من دیگه لازم ندونستم از همین جد همینقدر شما بدونید بد نیست یه بچه شیه حداقل اسم پدر و مادر اماماشو بدونه چند تا امام داریم 12 تا دا دیگه بیشترکی نداریم آها شنش خب باقی میشه 13 تا حضرت ابوالفضل بعضی حضرت ابوالفضل هم اشتباهی خب مفضل ابن عمر نه اون عمره یه عمر دیگه مفضل ابن عمر شخصی بود که معنوس امام کاظم علیه السلام هست. امام موسای کاظم علیه السلام، امام هفتم یه شخصی در همیشه در اون هم بوده به نام مفضل که در واقع حالا قلام حضرت بوده به نوعی حالا به نام قلام نبوده من مطالعه کردم قلام حضرت نب. این شخص میگه که من خیلی وقتا می‌دیدم که وقتی که حضرت رضا علیه السلام کوچک بود، تفرخوت سالی بود. امام کاظم علیه السلام او رو تو آغوش میگرفت بغلش میکرد رو پاش مینشون، این برنابرش میکرد تعبیرش اینه و یقبله و یمس لسانه و یعز و یز علا عاتقه و یزمه الیه یعنی که اون رو هی تو بغلش میگرفت، میبوسیدش، به تعبیر اموزیا بالا مینده، پایین مینده، بغلش میکرد. هی لبان حضرت رو می میمکید، میبوسید. امام رضا رو پدرش امام کاظم علیه السلام این کارو میکرد. اون رو به سینه میکش، اسبوندش. یه وقته هم حضرت میفرمود که ب اب ان ما عتب ریهکه و اطهر خلقه که و اب انا یعنی امام کاظم به امام رضا علیه السلام، حضرت علی بن موسی الرضا رو اینجوری صدا میکرد که پدر و مادرم فدای تو. تو چقدر خوشبوی ما اتیبریه که و ات هر خلقه که چقدر خوشبوی و چه آفرینشی در وجود تو هست و اون فضل توست که در درجات آخر است و اب فضل که بر همه هم آشکار این فضل تو این مفضل میگه من به امام کاظم گفتم که عرض کدم یاب رسول الله اینقدر که این شما به این طفل محبت دارید برای ما قضیه مشتبه شده من علاقهی به این طفل پیدا کردم انگار که علاقهی که میخوام به شما پیدا کنم یعنی هم در اون حد علاقه پیدا کردم خودم نارحتم از این قضیه حضرت میفرماید که حالا مفضل میگه حضرت جواب من رو دادم فرمودن که ای مفضل شما به همین دوستی که به این طفل داری به این محبتی که به این طفل داری بی افضای. من به منزلت من عبی اون مثل من هستم به پدرم بعد مفضل میگه که ارز کردم که یعنی که او حجت خدا هست بعد از شما بر ما حضرت میفهمد بلی من او رشد و من عصاهو کفر او امام هست بعد از شما و کسی که از او اطاعت کند به صلاح خود عمل کرده و کسی که اطاعت نکند و اسیان او, او را کند کفر ورزیده است خب این یکی از های امامت امام رزاست چرا که های ائمه چند تاست یکی کراماتشونه یکی از نشوناهای این هستش که امام قبلشون به امامت اونها چکا کنن؟ اعتراف کنن و اون حضرت رو معرفی کنن به اونها اشاره کنن خب چه اشاره واضحتر از این که حضرت به بیان میکنه به نزدیکان خودش که بعد از من امامی هست به نام امام علی ابن موسا حضرت رضا علیه السلام خب این امام رضا علیه السلام چند تا برادر دارن که فرزندان امام کازم هستن من دو تاشون رو به شما معرفی میکنم که اونها هم انسان بزرگواری هستند. یکیشون شاید هفتش کیلومتر الان بیشتر با ما فاصله نداشته باشه درسته؟ علی آقا حضرت صالح ابن موسال کازم نه شاهد چرا خیلی فاصله داره بیشتر است نزدیک هزار کیلومتر فاصله آره. این اموزد ساله تجریش نه اموزد ساله نه اموزد ساله, ساله تجریش چقدر در سال زیارت میکنید قبر اموزد ساله رو خب هم بذاریم اموزد ساله زیارت کنیم خوبه سالی میشه که نمیریم اشکال نداره م... نه این امام ساله فرزاد نه اون امام ساله تجریش رو دارم عرض کنم اون از برادران امام برادران بی واسطه امام رضا هست از بزرگان هست از رادی هستش که خیلی روایت اینهام داره در موردش حالا در واسطه اومده هم در اینجا و شهادت که پیدا کردن یا فوت کردن من تاریخشون دقیقا مطالعه نکردم اما می‌خواستم شخصیتشون رو شما معرفی کنم بگم ترین فرد امام رضا یعنی برادرش در نزدیکی ما هست به زیارتش بریم زیارت نامه خاصی هم دارد بخونیم چرا که وقتی میرید ملاقات امام رضا، مشهد و چه روی ما داریم با امام رضا زیارت کنیم چه سلامی به امام رضا بدیم و حضرت جواب بخوایم که ما برادرش رو که اینقدر نزدیک است به ما قبرش رو اینجا تنها بخوایم بذاریم اینها از اون خواسته هایی که امام رضا علیه السلام از ما داره دومین حضرت حضرت احمد ابن موسی همون چیزی که ایشون گفتن معروف به شاه چراغ که شهید هستند و در شهر شیراز مطفون هستند حالا به گفته حضرت آقا هم ایشون شهر شیراز سومین شهر مذهبی کشور ما هست بعد از مشهد و قم در واقع جایگاه حضرت احمد ابن موسی خیلی جایگاه بالایی است طوری که انقدر انسان بزرگواری بوده این رو نقل کنم خدمت شما به امامت امام رضا علیه السلام برمیگرده دقت کنید بعد از اینکه حضرت کاظم علیه السلام به شهادت رسیدن مردم رجوع کردن رفتن پیش حضرت احمد ابن موسی که با ایشون بیعت کنم به عنوان امامت فکر کردن که ایشون جانشین امام رضا علیه السلام امام کاظم علیه السلام هست بعد حضرت احمد بن موسا مردم و ورداش حرکت در شهر مدینه به سمت منزل امام رضا علیه السلام و خودش اولین نفر با امام رضا علیه السلام به عنوان امامت بیعت فرمودن و بعد مردم رو و همه نزدیکان و بستگان بنی هاشم رو مخصوصا به حضرت رضا علیه السلام ارجاع دادن که در واقع به امامت ایشون ما برادران عمی رو داریم در طول تاریخ که برادر امام یعنی فرزند امام خب دقیق کنید ولی وقتی مردم بهش رجوع میکنند اخ خداشم آره نه دست رد بسنید میگم بیاید خب آره مثل حضرت احمد ابن موسا نیست به خاطر همین جایگاه حضرت احمد ابن موسا جایگاه است که قبر بارگاهی در شهر شیراز دارد اینشاره توفیق بشه با هم یه دست جمعی هم بریم زیارت آی مصابی هم سیاحت هم داره حالا شیراز جاهای قشنگ هم تو راهش هم بالاخره بریم و مسیرهای مختلفی و قوم و اینها رو رد کنیم و کاشان و زیاده حالا همه رو نمود بگیم خب برگردیم سر جریان حضرت رزا علیه السلام یک از صفتهای امام رضا علیه السلام آلم آلم محمده الله امام کاظم علیه السلام به نقل از پدرشون حضرت جعفر صادق علیه السلام امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند به فرزندان دیگرشون مثلا به همین برادران امام رضا علیه السلام که هر سوالی دارید مراجعه کنید به فرزند برادرتون علی که امام رضا علیه السلام باشد خب چرا که پدرم امام جعفر صادق حضرت جعفر ابن محمد علیه السلام فرمودن که فرزندی از تو به دنیا خواهد آمد در سول به تو هست که او عالم پیغمبر است و او همنام امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که سلوات دیگه الله کنید اللهم سلالا محمد و آلم حمد و عجب سلوات ها خاطر که اونایی که خواهند چوارت میزنه بیدارشن خب بعد عرض کنم که یعنی یکی از صفات ها عالم عالم محمد بود ولی همه این صفت رو نمی این لقب حضرت رو نمی شناختن خب جریانی دارد بعد از اینکه امام رضا علیه السلام به امامت میرسند در سال 183 گفتم چه سالی متولد شد 148 حضرت متولد شد حالا اینجا پرانتز باز کنید دقت کنید میخوام یه بحثی با شما را بندازیم قبل از اینکه اصلا جریان امام رضا علیه السلام تموم کنیم ما چقدر دی وقت داریم علی آقا الان تقریبا یه رو به ما مзоваیم شمایم خب 20 ثانیه دی وقت داریم خب اشکال نه یه 5 6 دقیقه پرانتزی باز میکنیم با شما یه بحثی میخوام را بندازیم این بحثمونم دو طرفه است یعنی بعضیا بعد اینجا جواب بدن سوال جواب داریم خب همه دعای توسل خوندید دیگه درسته نگاه کردی چیزایی توش نوشته اونا که داری توسط زیاد خوندن و حفظن این جوابایی ما رو خوب میتونن بدن یکی از اون مسائلی که متاسفانه دوستان ما جوانای ما نجوانای ما که عنوان بچه شیعه هستن وقتی ما میاییم پیششون میگیم که خب چند تا امام داریم میگه مثلا اینجوری دوازده تا خب بعد میگم خواله اسم امام یکی یکی به ما بگو مثلا امام اول امام دوم امام سوم خب بعد این سوال منو دقت نمیکنه من چی گفتم گفتم چی کسی دقت دقت کرد اسم امام آها حالا که شما گفتی خودت از الان شروع کن بگو ما اینجرید تا پنج تا امام شما به ما بگی برای شما بسته نه نه فقط اسم امام به ما بگو اولی امام علی خب احسن احسن احسن خب هم پنج برای شما بسته بقیش هم که خواستین دیگه میگی خب بقیهش سختتر جوی این اولی ها خب بعد میایم سراغ کنیه خب و لقب کنیه و لقب دو تا چیز جدا هستن. حالا نمیخواد توضیح بدم به شما خیلی مختصر بگم که یکیش رو از اسم پسر برمیدارن یکیش رو از صفات لقب صفات طرف رو برمیدارن خب؟ اما کنیه رو بیشتر از اسم پسر بزرگشون برمیدارن خب؟ مثلا ما از امام نهم اسمش چیه شما بگید؟ امام امام نهم دیگه بچه اسم امام نهم. بگو اسمش امام جواب نیستش که. دیدی؟ <تصفيق> دی بگو گفت علی آقا کمکت کرد بگو. محمد ابن علی امام جواد امام نام پسر امام رضا خب در واقع دور دانه یک دانه پسر و یک دانه پسر امام رضا است. امام رضا یه پسر بیشتر نداشتن. به بعضی تعبیر کردن یک فرزند کلا داشتن حضرت. اما بعضی جا اومده که دخترانی برای حضرت گفتن. خب از اسمشون چیست؟ محمد خب احسان محمد محمد بن علی ابوعلی ابن موسی رضا اسمش امام ایشون یه کنیه دارد خب کسی کنیه امام جواد میتونه بگه بگو آیه منو شما شما درست میگه امام محمد تقی است این تقی لقبشه جواد بشه خب بسیار بخشنده بودن جود و کرم داشتن خب تقوای زیاد داشتن امام محمد تقی یه لغ... یه کنیه داره خب اینایی که خوب دای توسل نخوندن اینجا نمیدونن یادشون میره یکی از اون چیزای سخته اول سوال آسون بوده حالا که شما سوال آسون دادید سوال سختم جواب بده دیگه بچه‌ها بچه‌ها بچه... خب من یه راهنمایی به شما میکنم خب امام امام شیشم ما همنام پسر امام محمد هست خب من اولم گفتم گفتم کنیه را از نام پسرشون برمیدارن نام کنیه حضرت امام محمد تقیه علیه السلام ابو جعفره خب السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها تقیه یا ابن رسول الله دایی توسل دیگه اولشو نکتر دقت کردید اون اولین کلمه که دعای توسل داره اونا کنیه هست مثلا ما میاییم حالا قسمتی از حضرت رضا علیه السلام می‌خونیم. از سلام علیکه حالا از سلام که نداره ما سلام اینجا اضافه بکنیم بهش از سلام علیکه یا علی ابن رضا، از علی ابن موسی، ایوها رزا از سلام علیکه یا عبل حسن خب چند تو امامان ما به نام عبل حسن هستن خب حالا معروف اینجوری هست در عرب فقط نام پسر نیست. همین م... مثلا کسی که نامش علی هست ابلحسن میگفتن نام امیرالمومنین علی بود به خاطر همین کنیه اون حضرت ابلحسن یا ابوالحسن هست اینو همه داشتوش شنیدید دید خب کنیه امام موسی کاظم هم ابوالحسن هست خب همین یکی یکی اینها رو یاد بگیریم قبل از اینکه بحثمون شروع بشه این بلنگو روشن بشه علی شما رفته بودی بیرون ما با دوستان داشتیم صحبت می‌کردیم که هنوز پرانرژی نباستم و خب داشتیم صحبت می‌کردیم که در موردی که اسمها ها خیلی مهمه مثلا حالا اینجا یه بحث دیگه بود با دوستان ما اینکه اسما خیلی مهمه بچه ها. همین اسم اماما مهمه یه بچه شیه کونیه امامشو ندونه دوازده امام ما که چهارده هزار تا امام که نداشتیم که چند تا امام داشتیم؟ دوازده تا دونه کنیه و لقب و اسمش سه تا دوازده میشه چند تا؟ سی و شیشتا شما سی و شیشتا که نیستش جمع کنیم میشه تا. چون وزشون مشترکه چهارت امام داشتیم مثلشون علی بود درسته؟ از این دوازت امام خب اینا مشترکه اینها رو یاد بگیرید قسم میخورم به ذات اقدس اله اینها بچه ها خیلی مهمه ارزش داره برای بچه شیعه این چیزا ارزش داره ما با کلیمی ها که تو کشور ما هستن همین یهودیای کشور ما وقتی برخورد میکنیم من نگفتم برید قرآن حافظ کل قرآن بشید و که اونها هم وظیفه ماست باید بریم یاد بگیریم قرآن خوندهرم یاد بگیریم. ما بچه های کلیمی های, خ... یهودی های خودمون رو، تو مدارس خودمون باهاشون که برخورد میکنیم در کیفشون رو بازی باور میکنید غیر از کتاب های درسی کتاب مقدس خ... خودشون کتاب چیه تورات. تورات خودشون که حالا ما میگیم تحریف شده این کتاب چیزی تو کیفشون تو بعد تو مدرسه دیدم اینی که دارم شما میگم دیدم جلوی من کتاب درباره خونده مطلبی باشه در میذاری حالا آرامنه را عرام مگه مراجعه کنیم شاید اونها میجی باشم اون رو ندیدم خب اگر ما اونقدر که اونها به دین خودشون بودن ما به دین خودمون بودیم ما دنیا الان زیر دست ما بود نه به که ما بخوام قدرت طلب باشیم و نه به عنوان که ما دو دایدار ادالت علوی هستیم من نمیم قرآن بذارید تو کیفتون چون خدای نکده وقت بی احترامی شاید بشه اما اینقدر که قرآن رو تو قلبتون داشته باشید حالا شما اسم امامات رو تو قلبتون داشته باشید خب یه سلاحب بفیسیم پرانتزمون اینجا ببندیم برمیگم سر صفت و اون لقب حضرت که عالم عالم محمد بودن چرا این لقب برای حضرت بود عرض کردم این لقب رو پدر بزرگشون امام جعفر صادق از طریق امام کاظم علیه السلام به امام رضا علیه السلام دادم اما وقتی که اون حضرت در واقع به تعبیر خود من به اسارت و یا به تعبیر خیلی ها به اهدی به مرو اومدن به خراسان اومدن در اون زمان در اونجا معمون ملعون جلساتی رو جلساتی به عنوان جلسات مناظره و بحث و جدل برای امام رضا ترتیب دادن این همه شنیدید من مفصل اون جلسات رو نمیخوام بگم اما چندوش اسم میبرم در حد اسم بردن در اونجا وقت حضرت وقتی در اون جلسات شرکت کردند از اون علم لدنی خودشون استفاده کردند، از اون علم الهی خودشون استفاده کردند، بعد به واسطه اون علم تمام اون افرادی که اونجا آمده بودن اونها مغلوب شدن در اون مناظره ها به خاطر همین حضرت از اونجا معروف شد چون از اهل بیت پیغمبر هم بود بین مردم هم یعنی کل جهان اسلام از اونجا معروف شدن حضرت به چه نامی؟ عالم عالم محمد الله محمد در واقع این لقب اون حضرت ها عالمگیر شد این لقب حضرت هم عالمگیر شد همچون لقب معروف رضا که اون حضرت راضی هستند به رضای خدا بر هر چیزی بر اون حضرت خاطر همون به امام رضا میگن به حضرت علی بن موسی الرضا میگن امام رضا تو اون اخبار رضا و جلد نه بهار بهار نیست بهاره خب احسن بهار چند جلد کلش صد و ده جلده احسن صد ده جلد به نام عدد صد و ده که نا ابجد یا علی هست صد ده جلد علامه مجلس این کتاب جمع بری که جلد 49 همش در مورد موجزات حضرت رضا و شخصیت امام رضا علیه السلام هست در اونجا هم اومده تو کتاب و اخبار رضا هم اومده یکی از این معروف ترین سلام علیکم معروفترین مناظره ها با شخصی به نام جاسلیق با سه نقطه است جاسلیق خب احسان جا جاسلیق فارسی بگیم شما بهتر باید حالا این جاسلیق اسم کسی نه جاسلیق در واقع به عنوان کاتولیکه اینجوری <تصفيق> بگیم عربی شده شده جاسلیق خب یعنی این یعنی اسقف اعظم امروز ما بهش مثلا توی دنیا بهش میگن چی پاپ با قول معروف اسقف اعظم کاتولیکای جهان حالا اون زمان در همین منطقه مثلا خراسان ایران زندگی میکرد مثلا تو اون منطقه نبود تو اروپا نبود حالا به هر واسطی معمون اون آورد توی مناظری با امام رضا علیه السلام شرکت کرد در اون مناظره این شخص شکست خورد یکی از اون بحثهاشو من خیلی خلاصه بگم چون خیلی من نگاه کردم میخواستم برای شما بیارم خیلی طولانی بود شاید مثلا اندازه نصف یه کتاب این بحثا طول کشیده بود یه جا حضرت از اون میگه که من از شما سوال میکنم بعد اون میخواد که اول امام رضا از او سوال بکند خودش رو انقدر عالم میبیند که میخواد امام رضا از او سوال کند امام رضا علیه السلام میفرماید که من از تو از این جهت سوال میکنم که آیا تو انجیل رو قبول داری یه خنده‌ای میکند و میگه مگه میشه من انجیل رو قبول نراشم من خیلی خلاصه اینو دارم عرض خدمت شما میکنم دقت کنید بعد حضرت به او میفرماید که در اون قسمت سفر سوم انجیل در واقع حالا اگر آی قصورها باشه اونها به این معنا هست قسمتی از قسمت سوم انجیل در اونجا نخوندی که حضرت عیسی بعد البته قبل از این رو از حضرت رضا علیه السلام میخواد که دو نفر رو به عنوان شاهد تعین کنه اون هم میاد نفر اولش یکی از هواریون به نام یوحنا امام رضا اون رو شاهد میگه شما یوحنا رو قبول دارید اون میگه که بله من مگه میشه این هواری بزرگ که در واقع انجیل رو این هواریون نوشتن یکی از انجیل که امروز وجود داره انجیل یوحناست. یعنی منتصب به اون البته نقلم شده که هواریون نوشتند شاگردای اونها نوشتن مثلا چیه نوشته. ها اون انجیل واسطه است اما انجیل یوحنا منصوب به خود شخص یوحناست یعنی با یه واسطه به از اون انجیل های معروف هست اینی که من دارم عرض کنم. آره انجیل یوحنا خب اینم خوب اطلاعات خوبی داری ها؟ ماشاءالله سال اولم خوب جواب داد عرض که <تصفيق> از این باب گفتم یه قنده‌ای باشه که هم خواب داشت هم ایام ولادت امام رضا بعد واقعا شادس و بود خب حضرت رضا به اون شخص فرمود که یوحنا رو که قبول داری انجیلیش رو که قبول داری تو سفر سومش مگر اونجا یوحنا به نقل از حضرت عیسی که پیغمبر شما هست نگفت به نبوت من یعنی حضرت عیسی و نبوت پیغمبر بعد از من که شخصی است به نام محمد عربی سلامت نداشت الله وما صلى محمد و خاندان او یعنی اهل بیت او که وسایای بعد از او حضرت هستند ایمان بیاورید جوابی نداشت جاسلیق بده اینجا میگن سکوتی کرد نشست رو صندلی خودش و گفت من سوالی از شما دارم یعنی این سوال اول امام رضا از اون بود جوابی نرس کرد و حالا سوال دوم که خواست حواریون رو حضرت معرفی کنه و شرطه خاص خیلی طولانی است من دیگه همینقدر قد بسنده می مناظره دوم با رأس و الجالوت این رأس و جالوته من نگاه کردم میگم کیه گفتن که این هم مثل همون شخصه یعنی انسان خاصی نیست در واقع اسخف اعظم یا دربی اون تعبیر بزرگی یهودیای اون زمان ایران بوده یعنی جای دیگه هم شاید یاد اما بزرگ یهودی های ایران بوده و مناظره با حربز اکبر خب این هم یاد بگیریم بد نیست اسم عجیب غریب بوده میدونم. من شاید اشتباه خونده باشم شاید با فتح و به سلاس ه <تصفح> به سلاس شاید هربزه شاید هربزه من نمیدونم ولی اینجور نوشته بود این بزرگ کیا بود؟ بزرگ یهودیان بزرگ های بود در واقع زرتشتیان بزرگشون به نام حالا هربوز اکبر خب حالا هر گفتم به تسلیس حرکات ه این هم مناظره با امام رضا علیه السلام داشت هر کدوم اینها مفصل همه‌شو که من نگاه کردم ستاش تو یک کتاب بی چند جلدی مفصل اینا بحثش آمده بود حالا اگر خواستید من معرفی می‌کنم که خودتون هم میتونید بهش نگاه کنید این مناظرات که اتفاق افتاد در واقع این باعث این شد که حضرت رضا علیه السلام رو با اون لقب شناختن مردم و به علمیت امامت پی بردند. حالا معمون دوتا هدف داشت. یکی اینکه میخواست خودش ادعای تشیع میکرد. معمون از اون خلفایی که ادعای تشیع کرده. یعنی پیرو امیرالمومنین ائمه است. خب ادعا کرده ما این به این ادعا قبول نداریم. عرض کنم به شما این خاص که با از این طریق امام رو بشناسه اما اینجوری امام رو نمیشناسن عزیزان من حالا من تو یه مطلبی ارزم کنم اونطوری امام رو از کرامات امام میشه امام رو شناخت حالا ما کرامات امام رو ولی نقل میکنم برای ما. خیلی از کرامات امام رو بعد از فوتش هم دیدیم مثل این شفا... شفاهایی که به میدن شخصی یکی از دیگر از اونها به نام امران سابیه حالا پیروان حضرت یهیه پیغمبر اینها در اون زمان وجود داشتن الان هم هستن خیلی کم تر کشور عراق و ایران به در حد انقراز هستن اینها هم با امام رضا علیه سلام مناظره داشتن خب اینها هم در مناظره شکست خوردند. معمون اینها را همه را جمع میکرد بحث و مناظره برپا میکرد میخواست که اولا که بشناس امام رو ولی خودش درک نکرده بود امام علم لدنی و الهی داره و از طرفی مطلب دیگر این که میخواست امام در این جلسات شکست بخوره نتونه جواب اینها رو بده ولی متاسفانه باز هم به همون دلیل اول که شناخت نداشت امام زمان خودش رو نشناخت و نمیشناخت نتونست درک کنه این مطلب رو و نمیدونست که امام وصل به منبع وحی تمام علوم الهی در قلب او به واسطه این که خداوند خواسته وجود دارد اینجا همان یه پرانتز کوچیک یه دیستانیه باز کنم امام زمان ما که اسمش رو گفتن نبری حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام امام زمان علیه السلام رو هم امام زمان ماست بچه ها بریم دنبالیم که امام زمان شناسی کنیم بریم دنبال امام دنبال چهارت کتاب دوتا کتاب یه دونه کتاب در مورد امام زمان بخونیم یکی از معجزات امام زمان علیه السلام رو که در بین راه مدینه تا مرو میرفت و خیلی خلاصه که از کرامات امام رضا هست من خدمت رو میگم و مطلب ما تموم میشه علی آقا اینجا خب گفتن در جای حضرت اطراق کردند منزلی گذاشتن در نزدیک اونجا قاری بود گفتن که درون این قار زاهدی زندگی میکنه به امام رضا علیه السلام عرض داشتن که اینجا زاهدی زندگی میکنه است که اومده تو کوه بیابان حالا تمام دنیا رو گذاشته کنار خب در همین همین بود که گفتن زاهد خودش اومد به استقبال امام خب و خیلی امام رو تکریم کرد دعوت کرد که حضرت رضا علیه السلام برود به داخل قاری که او هست در زندگی می‌کنه در واقع منزل و معواش حضرت رضا علیه السلام قبول کرد اما 300 نفر همراه هم داشت این 300 نفر حدود 300 نفر رفتن گفتن یه غار کوچیکی بود که 7 8 نفر 5 6 نفر بیشتر اینجا نمی‌گرفتن اما دم درک رسیدن حضرت زهرا سلام بسم الله الرحمن الرحیم گفتن خودشون داخل شدن همه هم داخل شدن این در کتاب معجزات امام رضا سلام که سلطان محمد مرحوم سلطان محمد نوشته شخصی به سلطان محمد نوشته این کتاب رو در اونجا این معجزه ذک شده در واقع از کرامات حضرت هست بعد دیدن که این فرد یعنی اون زاهد ناراحته حضرت گفت خب ما که دعوت تو رو اکرام کردیم اومدیم به منزل تو چرا ناراحتی گفتم از این ناراحتم که ای چیزی برای پذیرایی ندارم گفت چی داری حضرت فرمود که چی داری گفت سه تا نام. اونجا به عنوان موجزات سه نان اومده هرکس کس بره سرچ کنه هستش توی اینترنت اینام اینا موجزه هستش خب نوشته شده خب گفت سه نان دارم یک کاسه اصل حضرت گفت خب بیار همونها رو آورد جلوی حضرت گذاشت همه هم نشستن دارن نگاه میکنن حضرت عبای خودش روی این انداخ دست میبرد زیر ابا یه لغمه ای از نان با اصل خب اینشالله قسمت بشه هممون از این لغمه ها از دست امام رزا علیه السلام یا فرزندش حضرت مهدی علیه السلام بگیریم یه لغمه ای از نان و اصل به این مرد میداد این مرد به یکی که این 300 نفر نفر هودن نفر پذیرایی کرد بعد حضرت وقتی رو برداشت تعجب این مرد این بود که هر سه کامل کاسه اصل کامل اونجا هست رو کرد به حضرت رضا علیه السلام عرضه داشت که یبنه رسول الله به خدا لعنت بر اون کسی که در امامت شما شک کند یه توسطلی با حضرت رضا داشته باشیم اینشالا حاجات همه رو برآورده کنه حاجات ما رو هم برابرده کنه مریضی که سفارش کرده همه مریض های منظور مشکلات جوان ها همه رو ایشالله حضرت برطرف کنه یه سلواتی نهت کنید بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یا عبل حسن الان اینجا اگر رو به قبله باشه این دوستان ما همه رو به امام رضا این دوستان اینوری ما همه رو به امام رضا بشینن سلام نایکم نه رو به مشهد و بشینید یه سلامی یه عرضه بداریم به حضرت انشاءالله که حاجات ما رو بده این گفتم اینجوری شاید یه حال خاصی هم داشته باشیم یه توسلی کنیم به حضرت رضا علیه السلام السلام علیکم یا عبال الحسن، یا علي ابن موسى، ایو حر يا یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین یا حجت الله همه حفظی دا یا حجت الله علا خلقه یا سیدنا و مولانا انا تمجحنا و استشفنا متوه وصله بکه اینا شدیم به درگاه مامرزه و قدم ناکه بینه یده حاجات ما همه عرضه هست در مقابل دستان مامرزه و قدم ناکه بینه یده حجات همه با یا و